جزیره کیش واقعا زیباست. به نظرم حتی از قشم هم زیباتر است. بلی ساحل اینجا بسیار زیباست. قروب جزیره کیش یکی از زیباترین منظره ها در سواحل دنیاست. گفتی که در این جزیره قواسی هم می کرد؟ درست است؟ بله اگر با قواسی آشنایی داشته باشی از قواسی در مناطق مرجانی سواحل کیش لذت می‌بری. در ضمن اسکی روی آب هم در سواحل کیش هیجان انگیز است. امروز چه برنامه ای داریم؟ من دوست ندارم در هتل بمانم. فکر نمیکردم اینقدر از جزایر ایران در خلیج فارس خوشت بیاید. به نظر من بهتر است به آکواریوم کیش برویم و انواع ماهی های کمیاب و زیوا را از نزدیک ببینیم. بازارهای سنتی و جدید کیش هم جالب و دیدنی است. البته میدانی که جزیره کیش یک منطقه آزاد تجاری است و محلی مناسب برای خرید و فروش انواع هاست ها هوا هم خیلی خوب است. زمستان کیش مثل بهار تهران است. بهتر است یک تاکسی بگیریم و در اطراف جزیره یکیش گردش کنیم. من دوست دارم اطلاعاتی در مورد کشتی تفریحی و اسکی روی آب به دست آورم. یادت باشد که از باغ پرندگان و سایر جاهای تاریخی و طبیعی دیدن کنیم و از آنها عکس بگیریم